أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بي انداغ محبن نحاو يتباره بسم الله الرحمن الرحيم افتربلین ناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون بنامه خدایی که به انداز محبان نهایت باره است حساب مردم به آنها نزدیک شده اما آنها در غفلت و روی کردان همد ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون حرفان بيداواري تازه افتراف پروردگارشان برای آنها فیاگت بولاد لا قلوبهم الذين إلا وأنتم تبصرون در النجووهامثمب حالی که قلوبشان در لهو و بیخبری فرو رفته است و این ستمگران پنهانی نجبا میکنند و می او یا جزئین است که این یک بشری همچون شما او یا شما به سراغ سحر می‌روید با اینکه می قال و اما پر برگار من, من همه ی سخنان را چه در آسمان باشد و با چه با در زمین می داند و او شنبا و دانا بل قارو اضغاق احلام بل افترام بل و جایم فلی اتنا بی آیت کما آنها گفتند بلکه خوابهای آشفتہ است اصلا او به دروغ آن را به خدا نه او یک شاعر است باوجود معجزه‌ای برای ما بیاورد همان گونه که پیامبران پیشین با معجزا فرستاده شدند ما آمنت من تمام آبادی هایی را که از اینها حلا کردیم هرگز ایمان نیابردن آیا اینها ایمان نیابرند؟ و ما الا ما پیش از جز مردانی که به آنها وحی می کردیم نفرستادیم. اگر نمی توانید از اهل سیک و اطلاع بپرسید ما جعل ما آنها را پیکرهاوی که غذا نخوردند قرار ندادیم. آنها چابدان هم نداشتند. و من سپس باعث یه راه که آنها داده بودیم وفا کردیم. آنها با هر کس رابنی نجات دادیم و مصرفان را حلال نمودیم. لقد كتابا فيه افلا ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله ی تذکر و بیداری شما تراونم. آقایا، انتیش نمیکنیم. وَأَرْسَلْنَا قَوْمًا مِنْ قَوْمِهِ مناطق آباد ستمگری را که ما در هم شکستیم و بعد از آنها قوم دیگری روی کار آمدند فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا آنها هنگامی که احساس عذاب ما را کردند ناگهان پاب فرار گذاشتند لا وَرْجِعُوا فرار نکنید و بازگردید به زندگی پر ناز و نعمتتان و به مسکن حالی پر زرق و برقتان تا سائران زیادند و از شما فقاضا کنند گفتند ای بای بر ما که زادن و ستم گرد مختیم و همچنان این سخن را تکرار می تا تاریشه آنها را قطع کردیم و آنها را خاموش ساختیم وَمَا خَلَقُنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِدِينَ مَا آثمان وزمینی با آنشرا ترمیان آنهاد براو گفاوتی نیا فریدی لَوْ أَرَدْنَا أَن نتخذ لَهُ فرض محال اگر میخواستیم فکر گرمی انتخاب کنیم چیز متناسب خود انتخاب میکردیم بل نخذف على ولا مما ما حق را بر سر باطل با میکو بی تا آن را حلال ساخت بابا این ترتیب ضغط المحبه بنابوت نشد اما وای من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن ولا يفتحن بر اوست آنچی در آسمان و آنها که او از او هستند هیچگاه از عبادتش استکبار نمی کنند و هرگز خلقه نمی شبند تسبحون اللیل و النهار لا یفتون شب رو تسبح می گوگند و زعف سستی به خود راه نمی دهند ام اتخبو آلیهتم لن أظ بهم ينشئون أأ جاءنها خد اوگان از زمین برگزیدند که خلق میکنند و منتشر میسازند لو كان فيهما آلهة تون الا الله لفترا فسبحان الله رب العرش ما یصفون اگر در آسمان و زمین خدا جان جز الله می بود فاسد می شدند منزده خداوند خدا بند پر عشت از توصیفی که آنها می کنند هیچ کس بر کار او نمی خورده بگیرد ولی در کارهای آنها جاوی سآل و ایرازد أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَّهُونَ الْحَقَ فَهُمْ مُعْرِضُونَ قَوْيَا أُنْهَا جُسْخُدَانِ مَأْبُودَانِ بگو دلیلتان را بیاورید این سخن من و سخن پیامبران که پیش از من دیدان اما اکثر آنها حق را نمی دانند و به این دلیل از آن روی گردانند و ما اورسلنا من قبلك من رسول الا موحي انه لا ما پیش سوهید پیانبری را نفرستا مگر این که با او وحجه کردین که معبودی جز من نیست بنابر اینی تنها را پرستش کنین وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیرد پاکیست او را اینها یعنی فرشتگان بندگان شایسته او هستند که هرگز در سخن بر او پیشی نمیگیرند و به فرمان او عمل می کنند يوم لن ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشبعون الا لمن انتظروه من خشيته مشفقون وهم اعماله امروز و آینده را میدانند و هم گذشته را و آنها جز برای کسی که خدا از او خوشنود است شفاعت نمیکنند و از طرف او و من یکل من هم انی الهم من دونهی فذالک نجدیه جهنم كذلك نجد هر کس از آنها من معبود دیگری جز خدا هستم کیفر او را جهنم میدید أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كان سارتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حق أفلا يؤمنون آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز را از آب قرا دادیم او جا ایمان نمی‌آورند و جعلنا في الارض رواتيا ان تميد بهم وجعلنا فيها تجاجا و در زمین کوهای ثابت و پا بر جاگی قرار دادیم تا آنها در آرامش باشند و با در آن در رها و رهای قرار دادیم تا اداویت شبان. و جعلن سماء تقبا محفوظا و هم عن آیات هامو و اسمان را سخت محفوظی قرار دادیم ولی آنها از آجات آن روی گداونند. وو النبی اللي خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر كلهم فی فلك یسبحون. و صوتی است که شب بر و خورشید و ماه آفریدی که هر یک از آنها در مدار دا دا داركتان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفا إمتتفهم الخالدون ما براجهش انثان قبلستو زندگي جابدان قرار ندا دهده أغاستو بمري انها زندگي جابدان داران كل نفس ذا و نرلو کن بالشر والغیر فتنة و ایلینا تو جعون هر انسان تعم مرک را می و ما شما را با بدی ها و نیکی ها آزمایش می کنیم و انجام به سوی ما باز می کنیم وإذا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا إلا آذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ که کافران ترا میبینند کاری جز استهدا کردن ندارند و میگوگند او این همان که سخن از خدا شما میگوید در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار خولف الانسان من سأريكم فلا آره انسان از اجله او بی ولی اجلا نکنید من آیات خود را به زودی به شما ارائه می و متى الوعد کنتم ان صادقين آنها میگویند اگر راست میگوید این بعده ای قیامت کی را میرسد لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوحِينَ لَا يَكُفُفُونَ عَن مُدُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ بُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ولی اکر می دانستند زمانی را از صورت و از پاشتهای خود دور کنند و هیچ کس آنها را یاری نمی کند این قدر در باره قیامت شتاب نمی کردند بل تأثیه زغتتا فتبهتهم فلا يستطیعون ردها ولا هم ينظرون آره این مجازات الاغی بسوره ناگهانی می میآورد و مفقوتشان میکند آنچنان که تپاونوزی بردب آن ندارند و به آنها مفعلت داده نمی شود ولا قادز تهذئ برسل من قبلك فحاقد من قبلک فحاق الذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اگر ترا استهزاء کنند نگران نباش پیامبران پیش استراو نیز استهزاء کردند اما فرنجوم آن چرا می کردند دامان استهزاء کردن تکان گرفت کل من یلاکم باللیل و من الرحمن بل هم عن ذكر ربي معرضون بیگوشه کاری شما را در شب و روز از مجازات خداوند رحمان نگاه می‌دارند ولی آنها از یاد روی કરતા نه ام لهم الیه تمع من دوننا لا یون نصر انفسهم ولا آیا آنها خدایانی دارند که میتوانند از آنان در برابر ما دفاع کنند نمیتوانند خودشان را یاری دهند و نه اسلاف ما بواسطه نیروی یاری می بل متى عندما أولئك وأباؤهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن ت الأرض نقصها من أطرافها أ فهم الغالبون ما أن هوا بقدران شن من تغفيه تا آنجا که عمر طولانی پیدا کردند آیا نمی بینند که ما مرتبا از زمین و عهد آن می کافیم؟ آیا آنها غالبند؟ قل انما انذرکم بالوحی و لا و من تنها به وسیله وحی شما را اندار میکنم بلی آنها که گوش گوشهایشان کرد انگامی که اندار میشه بند سخنان را نمیشه نفهم و لئیم مستدهم نفحتم من عذار ربک لیقولن یا ویلنا اگر کمترین عذاب پروردگارشان ها را لمس کند فریادشان بلند می شود ای وای ما همگی ستمکار بودیم و نگاه الموازینا في الصلي يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا و این که همیت من خضل اتینا بها و کفا بنا حافیدین ما ترازوهای را در روز قیامت نفت میکنیم لذا به هیچ کس کم ستمی نمی شود و اگر به مقدار سنگینی یک خردل کار نیک با و بدی باشد ما آن را حاضر میکنیم و کافی. که ما اصاب کنید نباشید و لقد آتینا موسی و آرون و و ما بموسی و حارون فرقان و بان نور و آنچ موجه یادآوری وری است دا, دا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهم انها كاستر بعد در غجوان هان ميتر ساند بعد قيامت و این ذکر مبارکی که بر شما نازل کرده اید اوکا امضا بن کار میکنید و الا قال اتینا ما من و وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادید و از شایستگی او آگاه هستید از ظال لئبیه و قومه ما آده از تماثیل لسی انتم لا کون آن هنگام که با پدرش و قوم اوگاه این مجسم هاگی بیروحی را که شما هم باره پرستش می کنید چیز قالوا وجدنا ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین مصردمند شما با هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده ای. قالوا اجیب ام انت من اللاعبین گفتن برای ما آباده این یا شوخی میکنی قال بالربكم رب السماوات والأرض فطرهن و على باركم من الشاهدین گال کاملا حق عبتان. پر برکار شما همون پر برکار آتمان ها به دمین که آنها را ایجاد کرده و من از که باغان این موتو هم لا تالله لأتیدن اصنامكم بعد انتو و النوم دبرین و به خدا سبگان نخشه برای نابودی بودخوجتان در خیاب شما می کنم. فجعلهم جذاباً اِلّا کَبِيرَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يُرْدِيونَ. سرنجام حمیق آنها جذب تبزورگ شنده قطع تا بسراغ یا او آگان. قالوا من فعل هذا هر کس با خدایان موچنین کرده قطعا از ستمگرونند قالوا سمعنا نافتا گفتند يقال له گفتند شنیدیم جبان از مخالفت با بت‌ها سخن می‌گفت که او را ابراهیم می‌گفتند گفتند فأتو بهی علا او را در برابر کشم مردم بیا تا گباکی دهند این کار را با خدایان ما ای, ای ابراهیم. قال الفعل کبیر هم هادا تستبون این کانو گفت بلکه بزرگشان کرده باشد از آنها سآل کنید اگر سخن میگوین رجعون ایبراهیم ان فقالوا انكم انتم الظالمون انهى بجدان خطاب کشتند و به خود گفتند حقا ثم نقضوا على رؤوسهم لقد علمت ما سپس باست بر سرهاویشان باشدونه شدند تو میدانی که اینها سخن نمی کنید قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ينفعكم ابرافیم گفت اویاد جز خدا چیزی را می فرستید. که نکم ترین سود برای شما دارد و نتیانی می رساند اففر لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقنون افت بر شما و بر آنچه غیر از خدا پرستش می کنی آیا اندیشه نمی و عقل نداری قانو حلقوه گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر خادی از شما ساخته او نهگوی باده وفلله گفتی ای آتش سرد و سالن بر ابراهیم باش و به آنها میخواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند ولی ما آنها را زیان کارترین مردم قرار دادیم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين وعوى ولوطا بسر زمين كأنها براوي همي جهانيان فر بركة صحي نجاب دعوتي ووهبنا له إصحاق و اسحاق و علاوه بر او یعقوب را به وای و همه آنها را مردان ثوده قرار دادید و و فعل یادی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و عدای زکات را به آنها بحیه کردیم و آنها فقط مرا عبادت می کردن وَنُقِّنَا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَوْمَةِ الَّتِي كَانَتْ عَمَلُ الْخَذَائِفِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ بَدُو <تصفيق> ثِيَابَ دَاوَر كَبَأُهَ وَعِلْمَ و از شهر که اعمال زشت و کثیف انجام می‌دادند رهایی بخشیدیم چرا که آنها مردم بد و فاسقی بودند و رحمتنا من و او را در رحمت خود داخل کردیم او الصالحان بود و نوحا اذناده من قرر فاستجرنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظيم و نورا بیادا بر انگامی که پیش از آنها تر بردار خود را خاند ما دعای او را مستجاب کردیم او به خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم و نقضناه من القوم الذين كذبوا إنهم كانوا قوم او را در برابر قومی که آجات ما را کرده بودند چرا که آنها کامه بدی بودند، لذا همراه گاه کردیم. وَالْمُلُودُ وَالصُّلِيمانِ إِذْ يَحُومانِ فِي إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غلم الْقَوْمِ وكنا لحكمهم شاهدين و داوود و سلیمان را به خاطر آورد هنگامی که درباره که داری که گوزفندان قوم آن را شبانه شریده و خراب کرده بودند می میکندند و ما شاهد قضاوت آنها بودیم. و فهمنا و حکم و علم وَسَقَطْنَا عَلَى ما هم باقی آن را سلیمان متفهم کردی و به هر یک از آنها شایستگی داوری و علم بحتوها و پرنسان را مفتخر داوود فاختیم که با او تصفیح خدا می و ما قادر بر انجام این تا بودیم وعلمناه صنعت لهو سل لکن لی تحصینکم من بأسکن فهل انتم شاکیون بحثاختان زره را با او تعلیم دادیم دا دا دا دا تا را در جنگ حاودتان حفظ کنند آیا شاه میگذاریم؟ و لسلیمان الرزیح عاصفتا تجری بی امره الى الاغضی التي بارتنا و بكل و تا را متخر سلیمان تا خیلی که با فرمان او بسوی سوی سرزمینی که اندرا بر بارکت کرده بودی حرکت می و ما از همه چی اوقات بودیم و من الشیاطین می گوون لع و یعملون دون ذلك و کن و گروهی از را رونی مسخر او قرار را که برای در دریاها زباسی می کردند و کارهای غیر دینی برای او انجام می تازند و ما آنها را از سمرد و سرکشی حفظ می کردیم من نی م مدن یوم و ان تا اوح وفرریی و عیوب را پاز آورد هنگامی که پر برزار راخوااندبدهای و مشکلات و منبور آوره و تو حملمر راقیی پس جدن به فصف نعمل میون و آتيناه اهل و مصلهم من عندنا و بدرالعیدی. ما دعای قربان سجات کردیم. بناراهتی هایی را که داشت برطرف ساختیم. و خوان داو نشرا و او باز کرد آن و همه را بر آنها افزودیم. تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکر برای عبادت کنندگان و اسماعیل و ادریس و ذلكفر کل من الصابرین و اسماعیل و ادریس و زلکیز را بیاد که همه صابران بودند و ادخلناهم ای رحمتنا اینهم من الصالحین و ما آنها را در رحمت خود داخل کردیم چرا که انها الصالحان بودند. و زنون ایز ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فناده فَنَا دَا تُجْبُرُ أَلَّا إله إِلَّا أنت سبحانك إِنِّي كُنْتُ و صاحب موکی را آورد در آن گام که خشمگین از میان قوم خود رفت و چنین میپنداشت که ما بر او تنگی نخواهیم گره اما موقعی که در کام نهان سرور رفت دران ظلمتهای متراکم فریاد زد خداوندار جستو معبودی نیست منزهی تو منستمگاران بودم بست جرنا له و نججیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین ما به اورا به اجابت رفندید از آن اندو نجاتش بخشیدی و همینگونه نہ مؤمنن را نجات میدهی و ذکریناء ابننا ربہو رب لا تذنی فضا وان با زکریا را یاد آورد در آن انجام که فراد کورش و عرض کرد ہر بار کاو رمن مراکن و فرزند برومندی من عطا کن و تو بهترین با ورثون و مسارعون فی الخیرات و و که لنا قاشعین ما دعای او را مستجاب کردیم و یخیا را به او بخشیدیم و همسرش را برای او اصلاح کردیم چرا که آنها در نیکیها سرعت می کردند و از روی طبق و تار ما را می خواندند و برای ما قاشع بودند ولكي احصن طور جهانا فِيهَا فيها من وصينا وجعلنا ومنها ايه للعالمين باباو دبر زنی را کدامن قدرت اولدگی به بیفتی و ما از روح خود در او دمیذین و او و فرسندش را نشانه ی بزرگی برای جهانیان قرار کردیم. این همه امتا واحدة و امت باهد بودند و من پروردگار شما هستم مرا پرستش کنید وجت بینهم گروهی از ای ربان کار خود را به سفر و قدر میانشان فشان دادم ولی همه همگی به سوی ما می می간다 فَمَنْ هر کس چیزی از اعمال صالح را بجا آورد در حالی که ایمان داشته باشد کوشش هاگه او نوستقاسی نخواهد شد و ما تمام اعمال آنها را می و حرام على قرية اهلتنا انهم لا با مقرر شد بر هر قريةی که ما آن را کردیم که ایشان رجوع نمیکنند. حتی اذا کتحت یعجود و محجود و هم من کل حبد می تا آن تمام که عجود و معجود گشوده شبربرد و آنها از هر ارتفاع به سرعت قبول می وَأَخَذَ رَبُّكَ الْوَعْدَ حَقًّا فَإِلَٰهِيَ شَاهِقَةٌ أَبْصَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاهِقَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي وَلَتِهِ ظَالِمِينَ و بعدی حق نزدیک می شود در درانانگام چشمهای کافران از وحشت از حرکت باز می مانند می گویند ای باز بر ما کس این بر غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم اینموم <تصفح> و دون الله حفظ شما با آنچی غیر از فرامی میپرستید هشتم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید لو کان اگر این ها بودند هرگز وارد آن شدند و همه در آن, هم آن جاودانه خواهند بود لهم فيها آنها در آن نادهای درد نالق دارند چیز چیزی نمی‌شنوند ان الذين سبقوا لهم مننا الفضل لا انك عن امدادون اما كسانك بعدين اذ قبل بانها دادين يعني مؤمنون صالح الان دور نگاه تا افت میشوند لا يسمعون حسيتها و <تصفيق> هم فی مشتهت آنها صدای آتش دوزخ را نمی شنبند با در آنچی دلشان بخواهد جا به دانه با هستند لا وحشت بجا و انها را اندوکی نمی‌خونند و فرشتگان به استقبالشان می‌رباند و می‌گویند: این همان روزی که با شما وعده داده شد. یوم کما بدأنا اول قلق نعیده وعدا که آسمان را کن در هم می پیچیم سپس همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم ان را باز می این که ما دا داد این و مسلمن انجام خواهیم داد و الزبور من بعد ذکر عباد ما در زبور بعد ذکر نوشتیم که بندگان صالح من بارس زمین خواهند شد إن این هذا لبلاغ قوم عاد ابلاغ راشني براوجي كامل جت اباوتك انتكان فما ارسل ماك رحمه للعالمين ماخذ رحمت قل انما یو حایل یا انما إله إله واحد فهل انتم مسلمون بگو تنها چیزی که بمن وحجه می شود این است که معبود شما خدای یکانه پس آجا شما فرمانبرداران هستید فَإِنْ تَوَلَّهُ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى اگر با این همه روی گردان شبهند بگو من به همه شما یفکان از عذاب علاقی اعلام خطر میکنم و نمیدانم آجا جا عذاب خدا به شما نزدیک است یا در این لو یعلم الجهر من سخنان آشکار را میداند و آن چرا کتمان میکنید نیست میداند بر چیز بر او مخفی نیست و این ادری لعله فتنة لكم و متاع اله من نمی دانم شاید این موجره شما با بحث که تا مدت معین قان رب حفوم بالحق و رب واقع امبرگو پر به حق داوری فرمان و این تغیان را خیفر ده ده و از پربارکار رحمان در برابر نسبت بای ناروای شما استمداد می تلبن.